پرسنل خوب و مهربان امبار نوین الماس سلام امیدوارم که خسته نباشین خدااققت میگم از همین جا امروز سالگرد تأیص شرکت نوین المسه، و این ویس و این تابلو به همین مناسبت خدمتون تقدیم شده. خواستم از همین جایگاه اعلام بکنم که حضور شما با همه کانتکت و مسائلی که با هم دیگه داریم همیشه مایه دلگرمی بچای فروش بوده و همیشه با هایی که شما می‌کنین ما سرمون جدی بالا بالاست. احترام و و عزت رو از شما یاد گرفتیم. آقای حامد خان بهرامی، آقای برجلی و جناب آقای شالی امیدوارم که تا حالا به این موضوع رسیده باشین که چقدر عزیز و جایگاه والایی دارین و انشالله که از این به بعد هم افتخار همکاری با شما نصیب شخص بنده بشه براتون راضی موفقیت دارم انشالله که از اینجا به بعد هم مثل همیشه به